وريه جمعه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یسفح لله ما في السماوات وما في فی الملك القدوس العزیز الحکیم الله که بخشا جانده با رحمت است صبوحا قدوح صبوحا قدوح آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح خداوند است همان فرمان فرمانروای پاک قدرتمند حکیم او کسی است که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا برانها آنها آیاتش را تلاوت کند و پاکیزشان گرداند و کتاب و حکمت تعلیمشان دهد هرچند پیش از این در گمراهی واقعی بودند همچنین بر دیگرانی كه هنوز به آنها نپیوستهند بدانید خداوند قدرتمند و حكیم است ذلک <تصفح> فضل الله یعتیه من یشاء والله ذو لفضل العظیم این فضل الهیاست که به هرکس صلاح بداند عطا می کند بدانید خداوند صاحب فضل بزرگی است مسئله کسانی که تورات با آنها عطا شده اما به آن عمل نمی مثل خریست که بارش کتاب است چه بد است مسئله قومی که آیات الهی را تکزیب کردند بدانید که خداوند ظالمان را به راه نجات هدایت نمی کند بگو ای یهودیان اگر میپندارید که فقط شما دوستان خدایی نه مردم دیگر اگر راست میگویید مرگ را آرزو کنید تا زودتر به وسال خود برسد حالانکه که به خاطر دستاوردشان هرگز مرگ را آرزو نمی کنند و خداوند بر احوال ظالمان آگاه است بگو این مرگی که شما هموار از آن میگریزید، شما را ملاقات خواهد کرد. آنگاه به سوی دامای نهان آشکار بازگردنده می تا شما را از عمل کردتان با خبر نماید. ای اهل ایمان، هنگامی که برای نماز روز جمعه فراخوانده شدید، به سوی یاد خدا شتاب کنید و خرید و فروش را رها کنید که اگر بدانید، این برای شما بهتر است. به هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و رزق الهی را از فضل خداوند طلب نمایید و بسیار خدا را یاد کنید امید آنکه رستگار شوید. اما آنها چون تجارت یا سرگرمی مشاهده کنند به سویان می روند و تو را همچنان که ایستاده ای رها می سازند بگو آنچه نزد خداوند است بهتر از بازی که و تجارت است بدانید که خداوند بهترین روزی دهندگان است و و من اتجاره و الله صدق الله بود <تصفيق>